سيوشي شمين حديث في المدير رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد كن الحج جهاد شموزان حج حج بله رفتن به سوی خانه الهي ولله على الناس حج البيت گردن شما ها هست این مردم که حج الله را به جا بیارید بگردنونه حج چنانچه جبرئیل اومدن از اسلام سوال پرسیدن قالن تا شده لا اله الا الله ان محمد الله وتقيم الصلاه وتا اخرش وان البيت حج حج رفتن وظیفه از وظایف مؤمن واجبی هست که گردن ماز در صورت توان اگر استطاعتش داشته باشی حج فضیلتش خیلی زیاده فضیلتش اینه که برای اون زن همچون جهاده فزيلاتش لا يوجد حديث أبو هيدان أن العمرة لأن كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة عمرته عمر كفارية يقولون ما بين الناس بحج مبرور ومقبور بدار قوة إلهي بوهدوش جوز بهش الله الصلاة كتاب تابع بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة بين حج عمرة متابعة وكني تبيدار بريد حج عمرة كون فاقرة كون حجة دار روزي براد باز يقولونه رزقروزی رو برات فراوام می کنه و درهاش برات باز میکنه. کنه یعنی فیل فقه و تو رو پاک میکنه و گناه ها رو هم همی طور پاک میکنه چنانچه آتش ناخالصی های آهن و تلاو و نقره رو پاک می کنه ولی سل الحج المبرور ثواب دون الجنه غیر از بهشت هم حج مبرور پاداشی نداره حج. حجی که مقبول به درگاه الگه باشه جز بهش پاداشی نداره الله اکبر الله بهمون من بهش بده که بدون عذاب وارد اون بشیم هیچ عذابی اللهم با اون گناهان و اون تقصیراتی که داریم هیچگاه عذابمون نده این پاداش را بده بدون هیچ عذابی حدیث هم هره در فضیلت حج هست که سؤال میشن بهترین عمل چیه رأی رسول الله فرمودن ایمان بالله و رسول ایمان بالله و رسوله سپس چیه سو گفت جهاد در الله سپس سومین چیز قال حج و مبروح حج مبرور و مقبول به درگاه الهی باشه خیلی این حدیث بزرگه یعنی این قد فضیلت این حج بزرگه حدیث هم داریم که رسول الله میگه که من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولادت امك کس حج لله انجام بده و فسق و فجور انجام نده گناه و فحشی دشنامی نده بره اونجا لله واقعا بندگی بنده اراسه و بنده مؤمن و متقی و مستقیم بر طاعت و عبادت باشه ثابت بکنه توبش، اونجا هست که برمیگرده از اون حجش چنان بر میگرده که هم همچون نوزادی که تازه زاییده شده اون نوزادی که پاک به دنیا آمده هیچ گناهی نداره اون کسی که حاجی هست حج رفته حجش هم مقبول به درگاه الهی شده و درست حجش رو انجام داده و توبهش هم بوده بر چنانچه. اون ذوات از ایشوت یعنی پاک از تمامی گناهان حدیثمون از عایشه هم داریم یا رسول الله انا نخذ ونجاهد جهاد نریم باشه به جنگین قال لكنا احسن الجهاد شو مو زیباترین و بهترین جهاد رو داري قال الحج و حج و مبرور حون حجی که مقبول و درگاه الهی باشه اون حجی که درست ادا بشه اون حجی که توبه توبه در اون خالصانه باشه عمو عایشه میگه بعد از اینکه این سخره رو چند تا هیچو حجره ها نمی کنم حدیث عمرو هم میتون میگه که وقتی که اسلام الله در قلبم لما جعل الله الاسلام في قلبي اتي اسلام الله ذلك اتك بکنا براس الله گفتم من شر دارم گفتم شرتم اینه که گناهانم بخشیده بشه و تبع راس فرمودن اما علمت ان الاسلام يهدم ما مکانه قبله نمیدونی که اسلام پاک میکنه گناهان ما قبله نمیدونی و الهجره تهدم ما كان قبلها هجرت اهم من دور هجرت از به مدینه و ان الحج يهدم ما كان قبله و حج اهم من دور گناهان ما قبله پاک میکنه حديث ابن عمر ميگال غازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله وفدا یعنی اون مهمانانی که اومدن به نزه الله اون کسی که حج رو و در راه الله جهاد میکنه دعاهم فا اجاب دعوتشون کرده و اجابت کردن دعوت الله و سألوه فا از الله میخوان و الله بهشون اعتام میکنه و میدهد و هر اون چه که میخواهن اعتام میفرمایه بله حاجی مهمان الله و شتافته به اون فراخانی که الله داده به سویش به سوی خانه خودش اون حج ولله علنا حج البیتی من استطاع علیه سبی گفتم حدیث خیلی زیاده یعنی کافی برای یک مؤمن فرمودیا الله ولله علی الناس <سؤال> حج البيت من استطاع إليه سبیله کسی که میتونه توانش داره بگردانه الله بگردن اون هر فردی گذاشته که خانه خدا را زیارت بکنه و برای حج بیاد نه فقط برای زیارت نه برای حج در اون وقت معلوم در اون زمان معلوم حج البيت رسول الله صلی الله علیه و آله مان ترفع ابل الحاج رجلا شو شخص حاجی خدا این برنمی داره ده سپوی بعدن ایلا کتب الله به آن نکه خودت پو ده س نمیداری حتی شوتو در مقابل امپرات حسینی از ام حا عنه سیه. یا اینکه گناهی گناهی از تو فاک میشه او رفع او رفع او به درجه یا با آن منزلتت الله بالا بره همه چیز با پاداشه و تو گفتم نکه تنها به زنا به مردم هم تو یه حدیث عسین ابنا علی داری. شخصی از راساس عسین پرسید میگم من ترسوی هستم و ضعیف نمیتونم کجایت برم. قال هلوم ملا جهادن لا و شوکت آفیا بسیار جهادی بشت و کدرون شوكي وصختي نيسي يعني قال الحج بله اين فازيلته حج فعامتو كلا سميه الحج الجهاد كله ضعيف هكاسي كزايفة جهادش حج وسم براي زنا براي معدام كازباب اولا كبهترين عمل براي انها هاس ككل قناهان شنو باق ميكونه